شنوتو با افتخار تقدیم می کند پاتر و زندانی اسکاوان جلد سوم از مجموع داستان‌های هری پاتر نوشته جی رولینگ ترجمه ویدا اسلامی آزرخش جاروی مورد علاقه هری و آخرین مدل جاروی بود که تازه به بازار آمده بود هری هرگز فکر نمی کرد روزی به سوار آزرخش بشود اما صبح یکی از روزها فردی ناشناس حدیهی برای او فرستاد که هری را به شدت قافلگیر کرد هری صاحب آزرخش شده بود و از شادی در پوست خود نمی‌گنجید. اما این شادی دوام چندانی نداشت چرا که ماجرای زخمی شدن مالفوی بالا گرفته بود و قرار بود هاگرید به دادگاه هزار شود در صورت محکوم شدن هاگرید هیپوگریف کشته می میشد و هاگرید نیز از سمت استادی کنار می میرفت با وجود این هری رون و ارمیون امید خود را از دست ندادند و همچنان به هاگرید دلداری می دادند بعد از تعطیلات پروفسور لوپین هری را گیر کرد لوپین قصد داشت طرز مبارزه با یک ساز را به هری آموزش دهد به همین دلیل یک جعبه حاوی لولوخورخوره با خود به کلاس آورد و از هری خواست تا تمرین لازم را انجام دهد پروفسور لوپین از افسونی به نام سپر مدافع صحبت کرد او به هری گفت که این سپر بنا به هر جادوگر شکل خاصی میگیره و دیواری بین دیوان ساز و او ایجاد میکنه کافی فرد به محض مواجه شدن با دیوان ساز به بهترین خاطرات عمرش فکر کنه و ورد مخصوص رو به زبون بیاره اسپکتو پاترونوم هری بعد از چندین ساعت شکست سرانجام توانست افسون را به موقع به زبان بیاورد و دیوانهساز را متوقف کند وقتی هری در مورد شکل و غیافه زیر کلاه ها پرسید لوپین چیز زیادی نمیدانست او برای هری توضیح داد که تنها در یک مورد می توان چهره یک دیوانهساز را دید و آن هم در حالتی است که دیوانهساز بخواهد به کسی بوسه بزند روح قربانی در زمان بوسه دیوانساز از بدنش خارج می شود و وحشتناکتر این بود که وزارتخانه به دیوانسازها ابلاغ کرده بود در صورت پیدا کردن بلک به او بوسه بزنند. پس از تمرین هری حال روز خوشی نداشت. چند روزی بود از خالخالی خبری نبود و رون احتمال می داد گربه هرمیون کچپا او را خورده باشد. همین امر روابط رون و هرمیون را برهم زده بود. علت بعدی مسابقه تیم های گریفندور و اسلاکترین بود و در نهایت هیجان تماشاچیان با برد تیم گریفندور به پایان رسید اما نامه هاگرید این شادی را از بین برد من توی دادگاه شکست خوردم کجمنگار نزدیک غروب اعدام میشه اون گناهکار شناخته شد هری رون و هرمیون بعد از دیدن این نامه زیر شنل نامرئی به کلبه هاگرید رفتند اما در هنگام بازگشت صدای پای حیوانی را شنیدند یک سگ سیاه بزرگ با چشمهای روشن به سرعت به سوی آنها میدوید سگ به سمت رون حمله کرد و دست او را گاز گرفت هری به سگ حمله کرد و به موهای بدن حیوان چنگ زد اما سگ به راحتی رون را رو روی زمین کشید و با قد به درون شکاف بزرگی بین های درخت بیله بود. برد خالخالی و کچپا نیز به افله رفتند و هری و هرمیون نیز به زحمت داخل آن خزیدند داخل حفره تونلی بود که در انتهای آن کلبهی کهنه قرار داشت وقتی داخل کلبه رفتند رون را دیدند که پای شکستش با زاویهای غیر عادی روی زمین قرار داشت هری و هرمیون با عجله به سویش شتافتند و گفتند، رون حالت خوبه؟ سگه کو؟ اون سگ نیست هری این یه تله است اون یه جانور نماز. هری فاصله برگشت و مردی دادید که در اتاق را روی آنها می بست. موهای کسیف و جوریدهش تا آرنجش می رسید. اگر چشمهایش در حدقه تیره و گود رفتهش نمیدرخشید درخشید با جسد هیچ فرقی نداشت. پوست رنگ پریده و ماتش به اسکلت صورتش شسبیده بود. دندانهای زردش نمایان بود و می خندید. او سریوس بلک بود. در به شدت باز شد و تودهی لرم زنگ در فضا پراکنده شد هری برگشت و چشمش به پروفسور لپین افتاد لپین با حالت عجیبی هاکی از هیجان شدید گفت اون کجا استریوست هری بلافاصله به لوپین نگاه کرد متوجه منظور لوپین نشده بود لوپین از چه کسی حرف میزد رویش را برگرداند و بلک دستش را به طرف رون نشانه رفت هری با صدای بلندی فریاد زد پروفسور لوپین اینجا چه خبره اما نتوانست جملهاش را تمام کند زیرا ای دید که باعث بند آمدن زبانش شد لوپین به سمت بلک رفته و او را در آغوش میکشید قلب حریق در سینه فرو من به شما اعتماد کردم در حالی که تو تمام این مدت با بلک دوست بودیم لپین گفت بذار برات توضیح بدم هری. من یه گرگینه هستم البته اینو همه می دونم. رون که نفس نفس میزد گفت دامبلدور با اینکه که تو گرگینه ای تو را استخدام کرد مگه دیوونه شده؟ لپین به آنها نگاه کرد و در طول اتاق بالا و پایین رفت در همین لحظه خالخالی بیرون آمد و میخواست فرار کند اما رون ناچار شد دوم بیمویش را بگیرد کچپا از کنار بلک بلند شد و فشفش فش کرد لپین به رون نزدیک شد وقتی به خالخالی نگاه میکرد نفسش در سینه هفت شده بود رون که ترسیده بود خالخالی را به دست گرفت و گفت این موش چه شده؟ سیروس بلک با صدای درگش گفت اون موش نیست منظور چیه؟ لپین آهسته گفت اون یه جادوگره یه جانور نماست اون پیتر پتیگرو هستش حدی گفت تمام کسایی که تو اون خیابون بودن شهادت دادن پتیگرو مرده لپین با حرکت سر او را تایید کرد و گفت همه فکر میکردند بلک پیتر رو کشته. خود منم همین فکر رو میکردم. تا اینکه امشب توی نقشه اسم اونو دیدم. آخه نقشه ای خارتگر هیچ وقت دروب نمیگه. پیتر زنده است توی دست رونه. بعد موی خاکستریش رو حصورتش کنار زد و ادامه داد. همه چیز با گرگینه شدن من شروع شد. وقتی یه گرگینه گازم گرفت خیلی کوچیک بوده. پدر و مادرم به هر دری زدم ولی اون روزا این درد درمونی نداشت معجونی که پروفسور اسنیپ برام درست میکنه تازه کشف شده تا زمانی که یه هفته قبل از بد کامل ماه اونو بخورم وقتی تغییر شکل پیدا میکنم عقلم سر جاشه میتونم مثل گرگ بیازار توی دفترم کس کنم و منتظر افول ماه بمونم اما قبل از کشف این معجون او خیلی فرق میکرد من ماهی یک بار به یه حیولای تمام ایار تبدیل میشدم برای همین اومدنم به هاگوارتز غیر ممکن بود تا اینکه دامبل دامبلدور مدیر شد او مرد مهربونیه گفت که میتونم به مدرسه بیام به شرطی که اقدامات احتیاطی رو مو به مو انجام بدم یادت چند ماه پیش بهت گفتم که بید کتک زن رو همون سالی کاشتن که من به آگوارتس اومدم؟ در واقع اون رو برای این کاشتن که من بتونم به آگوارتس بیام تونلی رو که به اینجا میرسه هم برای من ساختن ما یه بار منو و یه از قلعه به اینجا میابردن که تغییر شکل بدم درخت رو برای این جلوی در برودی تونل کاشتن که من وقتی خطرناک میشن کسی نتونه وارد اینجا بشه اون دوران بهترین سالهای عمرم بود برای اولین بار تو تمام عمرم سه تا دوست خوب پیدا کرده بودم. سیریوس بلک پتیگرو و پدر تو هری جیمز پاتر. دوستان متوجه شدند که من ماهی یه بار غیبم میزنه من براشون داستانهای مختلفی سرهم میکردم میتغسیدم اگه بفهمند که من چی هستم ازم دوری کنند ولی اونا حقیقت رو کشف کردن و کاری کردن که اون روزا به بهترین ایام عمرم تبدیل شدن دوستای من جانورنما شدند هریکه و مبهوت مانده بود گفت پدر منم جانورنما شد بله اونم شد اونا سه سال از بهترین سالهای عمرشون رو برای پیدا کردن این راه صرف کردند پدرت و همین سیریوس باهوشترین بچه های مدرسه بودند و پیتر فقط با کمک اونا تونست جانورنما بشه اونا وقتی به شکل آدم بودن نمیتونستن کنار من باشن. ولی وقتی به شکل ابون در میمدن میتونستن پیش من بمونند. یه گرگینه فقط برای آدما خطرناکه راکه. همشون از تونل مخفی میگذشتن و میمدن پیش من. خلاصه اینطوری شد که نقشه غارتگر رو طراحایی کردیم و اسمای مستعارمون رو روش نوشتیم. سیروس، پاندی، پیتر دنباری که و جیمزم شاخدار بود. سپس به هری رون و ارمیون نگاهی کرد و ادامه داد. پروفسور اسنیپ هم هم کلاسی ما بود. اون مخالف سرسخت استخدام من برای تدریس دفاع در برابر جادوی سیاه بود. شاید به خاطر شوخی بود که سیروس باش کرد. منم توی این شوخی نقش داشتم و ممکن بود به قیمت جونش تموم بشه. اسنیپ خیلی کنجکاف شده بود به من هر ماه کجا میره سیریوس هم تصمیم گرفت سر به سرش بذاره بهش گفت تنها کاری که باید بکنه اینه که با یه چوب دراز به تنهای درخت بزنه و دنبال من بیاد اسنیپ و من این کار کرد ولی پدرت که شنیده بود سیریوس به اون چی گفته دنبالش رفت و اسنیپ رو از اونجا بیرون آورد البته اسنیپ من توی تونل دیده بود رام بهش دستور داد این راز رو برای هیچکس کس فاش نکنه هری آهسته گفت پس پره همینه که شما رو دوست نداره فکر میکنه شما هم توی اون شوخی سهیم بودین درسته؟ کاملا درسته این صدای سرد و بیروخ از دیواری که پشت سر لپین بود به رسید. سید لحظه ای بعد اسنیپ شنل نامری رو درآورد و چوب دستیش رو به سمت لپین نشانه اسنیپ بلک و لوپین را خل کرد و پیش از آن که توضیحی بشنود آنها را مجبور به ترک گلبه کرد. او سعی داشت هر دو را گناهکار جل بدهد و فکر می‌کرد بلک را دستگیر کرده است. ناگان هری خود را جلو اسنیک انداخت اسنیپ با عصبانیت گفت: "از جلوی من برو کنار پتر." هری فریاد زد: "عجب آدم بدبخشی هستی. فقط برای اینکه اونا توی مدرسه مسخرت کردن نمیخوای حرفشون گوش بدی؟" اسنید به میانه حرفش دوید. ساکه. هیچکس کس جارت نداره با من اینطوری صحبت کنه. تو هم دست کمی از پدرت نداری پتر. من تو رو نجات دادم. باید به پام بیفتی و از من تشکر کنی. تو هم باید مثل پدرت کشته می شدی. اون هم مثل تو اونقدر مغرور بود که بلک بهش خیانت کرد. در همین لحظه چوب دستی اسنید به هوا رفت و خودش با سر به زمین خورد و از هوش رفت. لوپین به هری گفت: ممنون. هری به تندی جواب داد ولی من هنوز حرف شما رو باور نکردم لپین گفت تمام این مدت ما فکر کردیم بلک به پدر و مادرت خیانت کرده و پیتر تونسته اونو پیدا کنه در حالی که برعکس بوده شبیه که پدر و مادرت کشته شدن جیمز پیتر رو رازدار خودشون کرد بعد چوب رو به سمت خالخالی گرفت و بعد از لحظه‌ای جای موش رون مردی گوس کرده با سری تاسی استاده همگی برای اثبات حقیقت به بیرون رفتند و پیکر بیوش اسنیپ نیز با خود بردند اپری در آسمان جابجا جا شد سایه های تاریکی بر روی زمین پدیدار شدند و سپس نور محتاب همه جا را روشن کرد در همین لحظه صدای غرشی به گوش رسید سر لپین در حال تغییر شکل بود دست و پایش خم شدند و به شکل پنجه گرگ درآمدند. وقتی گرگینه غرش کرد سیریوس، پتگرو، هری، رون و هرمیون فرار کرد مهم ماجرا به نفع اسنیک تمام شد. چرا که بهوش آمده بود از دست گرگینه فرار کرده بود و توانسته بود بلک را دستگیر کند. هری و هرمیون نزد دامبلدور رفته بودند. دامبلدور دستش را بالا آورد تا سیل خروشان توضیحات آن را متوقف کند و بعد به آرامی گفت: فقط گوش کنی ازتون خواهش می‌کنم حرفمو قطع نکنیم برای اینکه وقت زیادی نداریم. غیر از شهادت شما هیچ مدرک دیگه‌ای برای اثبات بیگنای بلک وجود نداره. و شهادت دو جادوگر سیزده ساله هیچ کس رو متقاعد نمی‌کنه. چندین شاهد عینی قسم خوردن و شهادت دادن که بلک رازدار خانواده پاتر بوده. حالا خوب به حرفای من گوش کنیم سیریوس توی طبقه هفتم زندانی شده. اگه همه چیز خوب پیش بره امشب میتونین جون دو دوتا بیگناه رو نجات بدین دوشیز هرمیون همه چیز رو میدونه هرمیون ساعت شنی ظریفی رو از گردنش بیرون آورد و سه بار برگرداند همه جا تیره تار شد هری احساس کرد با سرعتی آور به عقب پرواز میکند بعد از چند لحظه همه چیز به حالت عادی برگشت و هرمیون گفت ما به زمان گذشته برگشتیم آنها ابتدا به سمت کجمنگار رفتند و زنجیر او را که به درخت بسته شده بود باز کردند کجمنگار سر از پانه می شناخت. هر دو سوار بر کجمنگار به سمت بلک پرواز کردند و در عین ناباوری بلک او را نجات داد. یا سال تحصیلی نامه ای آشنا به دست هری رسید من و کجمنگار مخفی شدیم نمیتونم بگم کجاییم چون ممکنه این نامه به دست غریبه ها بیفته مطمئنم که دیوان سازها هنوز هم دنبال من میگردند زمنان یادم رفته بود یک چیزی رو بهت بگم من آزرخش رو برات فرستادم پاکت دیگری نیز به نامه اول زمینه شده بود این جانب سیریوس بلک پدرخ از این تاریخ به بعد رفتن پسرخانده را به حاکزمید در تعطیلات آخر هفته بلا مانه می دانم. دوستان عزیز شنبنده آنچه شنیدی. آخرین قسمت از رمان هری و زندانی آسکابان بود. امیدوارم بازخانی این رمان مورد پسندتون قرار گرفته باشه. فردا شب با نقد و بررسی این اثر در خدمت شما خواهیم بود. دعوت میکنم این برنامه ما را هم بشنوید. تا آن زمان همه شما دوستان عزیز رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. شب خیر و خدا یار نگهدار. ارائه دهندگی پادکست های صوتی فارسی